من خیال میکنم، من خیال میکنم که اون قزل 188 نسخه مرحوم کانلری در نظربازی ما بیخبران حیرانند من چنینم که نمیدم دمدگریشان دانند رو خوندیم یه چند بیتیشم معنی کردیم مثل که معنی نکردیم، حالا فرگار رو معلوم میشه و با چهار بدید یه میگه آقلان نقطه پرگار وجود ولی عشق داند که در این دایره سرگردان این چقدر تناسب را آیت کرد اولا پرگار وسیله دایره زدن میگه و کاری که میکنه دایره میزن بعد دو تا نکت داره دو تا نیش داره یکشون وسطه و ثابته یکی دیگهش دور میزن که درسته که آقلان نقطه پرگار وجود داره ولی وقتی که کار عشق بیوکته معلوم میشه که اونها در این دایره یعنی دایرهی که خود پرگار میزنه سرگردون هست برای اینکه یه لنگ پرگار سرگردون یه لنگش ثابتی آشقان نقطه پرگار بوجود هن. ولی آقلان عشق داند که در این دایره سرگردانه خاجه با پرگار خیلی بازی کرده خیلی و چیزای قشنگ میگه آسوده بر کنار چو پرگار میشدم میشدم یعنی میرم اون لنگ متحرک چی آسوده بر کنار چو پرگار میشدم دوران چون نقطه آخوزتم در میان گیره مثل اون یکیله اون, اون نقطه وصل نظاهر این فراغون داره یک جا پرگار رو به معنی مکروهیله آورده که این معنی است که خیلی معمول نیست در مورد معشوقش میگه گر مساعد شودم میرسیم بعد بهش. گر مساعد شودم دایره چرخ کبود چون دایره آورده هم به دست آورمش باز به پرگار بگرد به پرگار دیگر به نیبای کلکی اهده ما با لب شیرین دهنان بست خدا ما همه بنده و این قوم خداوندانه صوفیه معتقدن که هیچ موجودی غیر از انسان عشق نداره و ملائکه داره احوال ثابتن یعنی خلق شدن برای اینکه که روکو کنن خلق شدن برای اینکه سجود کنن خشم و شهوت درشون وجود نداره این هیچ کاری اون وزیفه که براش خلق شدن نداره در حالی که انسان هم یه جنبه امسانی داره هم یه جنبه حیوانی یعنی از لاز بدن حیوان به تا آمانی از برقی با حیوانات دیگه نداره خشم داره شهوت داره خوردن داره خوابیدن داره و اینا سعی می‌کنن اختیار آدم بکشن طرف خودشون دیگه با آدم این وسط چیزه آدم این وسط بی‌تکلیفه که چیکار کنه اگه به طرف انسانی متمایل بشه مقامش از پرشته می‌ره بالاتر برای اینکه پرشته کاری نه، مجبوره به اون کار و اگه به حیبون متمایل بشه، از حیبون پستره به دلیل اینکه حیبون نمی‌فهمه رفته میکن. ولی امسون می فهم. به همین دلیل حالا داستان های دارم هم کنم که یه قصه هی هست قرآن قصه هاروت و ماروت. نمیدونم شنیدید چه نیدید نشنیدید و هر حال یه کتاب درجه یکی هست به نام فرهنگ تلمیهات ما دکتر سیروس شمسا همه این قصار ها رو نقل کرده من اینجا قصه بر شما که نمیتونم تونم بگه. داستان دوتا فرشته هست که به خدا گفتن که تو چرا آدم و خلیفه‌ی خودت کردی در روی زمین که خون می‌ریزه و فساد می‌کنه و هزار بعد وقتی روجود می‌اره و حال اینکه ما همش تو رو عبادت می‌کردیم سجده می‌کردیم، می می‌کردیم خداوند فرمود که من چیزی رو می‌دونم که شما نمی‌دونیم گفتن چطور رو گفت آدم آدمی اختیار داره و مسئولیت داره گفتن خب ما هم می‌تونیم گفتن که چرا؟ خب می‌تونین به صورت آدم در بیاند برید به روی زمین و وسط مردم زندگی دو دوتا ورشتو البته اصلا استاد من مرهون دکتر محین یه مقاله نوشته و نوشته که هاروت و ماروت صورت تصحیب شده ای اسم عربتات و امرتاته که در فارسی شده خورداد و مر... مرداد و اینا در اصل اسم این برج اسم دوتا فرشته هستن اسم ماهای دیگه شمسی هم اسم فرشتگان دیگری هست و هر حال خورداد و مرداد او معتقد که به صورت هاروت و ماروت مردن در قرآن و قصه این است که آمدن دو صورت آدم شدند و چون علم زیادی هم داشتن در آسمان ها بودن اینا آمدن مردم بسیار محترم نیمیشه شروع کردن به قضاوت در نیون مردم ونی آمد پیش اینا و آقایون قاضی ها گرفت دارش شده چشم و کرد و گفتن خانم ما ناکر شما این یه گوشه چشم انایتی ما بکنید نه گفت که نه اگه من علم سهر بیاموزیم من اون وقت ممکنه که یه فکر حالتون بکنم اگر نکی گفتن خیل خوب علم سهر به این زن آموخت و این زن هم ستاره شد رفت به آسمان و ستاره زهره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 بعد میگه که اینا در چاهی، در بابل به یک موی سر آویزونن و هر کسی کنار اون چاه برسه و با اینا برخورد بکنه به اینا چیز می سحر سهر می آموزن ناس از سهر. به مردم سحر می آموزن. و حافظ یه جا میگه که رد شدیم من این غزل گر بایدم شدن سوی ها رو صد گونه ساهری بکنم تا بیارمه اشاره این رسل. این است که عشق جزء مختصات آدم یه جدیگه باید حافظ میگه فرشته عشق نداند که چیست بسته مخواه بخواه جام و شرابی بخواه که آدم بیست. این که میگه که عهد ما ما یعنی بنی نوع امسان عهد ما با لب شیرین دهنان و است خدای ما همه بنده و این قوم خداوندانم خداوند یه منیش صاحب و مالک. اینجا هستیم که ما همه بنده ایم هم یعنی صاحبش دیگه مالکی ون. این اشاره به عشق هست که در وجود آدمی سرشته شده و واحیم به می تعبیر میشه اون قذل خیلی معروف و حافظ باز دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند گل آدم سرشتند و به پیمانه زدند باز اون میخانه میخانه اشکه یه جای دیگه خودحافظ همینو سریح میگه میگه در میخانه اشک ای ملک تسبیح بود کندرانجا تینت آدم مخمر می گل آدم اونجا می در میخانه اشک بنابراین اینجا که میگه که اهد ما با لب شیرین دهنان و از خدا یعنی فقط ما آدمی زادگان هستیم که عشق داریم کفلسانیم و هوای می و مطرب داریم آه اگر خرقه پشمین به گروب نستانه مفلس اصلا فلس یعنی پول خورد فارسیش میشه پشیز فلس ماهیرم به فارسیش میگن پشیزه یعنی چیزی مثل سکه بود. پول من خورد و مفلس یعنی آدمی که سرکاش با پول خورد افتاده دیگه پول بالاتر پولای زرسلیم نداره میگه ما مفلس هستیم هوا به معنی میل و آرزوست اصلا در عربی هوا معنی عشقه هوای میل و داریم یعنی میل و آرزوی مطرب بریم چه خاکی به سرمون بریزیم اگر خرقه پشمین و گیره. نگیرن خرقه صوفی عزیزترین چیزشه سند ارتباطش با سلسله شه. از دست پیری که به او سر سپرده، این خیرگره میگیره و هیچ وقت نباید از خودش جدا بکنه وقتی کسی حاضر بشه اینو ببره گروه بذاره ببینید که در چه حالیه در زم باید بگم که یه سنتی هست یه بار مثل این گفتم اینو که شاعر عربی بود به نام سالم، این سالم معروف شد به سلم خاسر خاسر از خسارت، و قوسین یعنی زیانکار این سلم خاسر، علت اینکه که به این معروف شد، این بود که مصحف داشت که نوشته، جلد تمام داشت رفت می کرده، این مصحف رو گذاشت، شراف گرفت <تصفيق> و به همین دلیل اونجایی که خاجی می که در همه دیر مقان میز چون شیدهایی خرق جایی گرو باده و دفتر جایی احتمالاً ای به همون عمل سلم خاصره که مصحف و گروه باده بزشته این از که مفلسانیم و هوایمه ی داریم آه اگر خرقه پشمین به گروه نستانن اگر خرقه پشمین رو گرون نگیرن من چه خواهدیم سر خودم لاف عشق و گله از یار اینجا باید یه علامت سوال بذاریم. لاف عشق و گله از یار زهی لاخ درو عشق بازان چنین مستحق هجران. یه آدم عشق اش بگه عاشق هستم بعد از معشوقش هم گله کنه. میگه چنین عاشقانی مجازاتشون هجران. مستحق درسته و مستحق درست نیست مستحق یعنی استحقاق دارنده همچنین کارمند دولت میگن مستخدم دولت در حال که مستخدم اسم فایل یعنی استحقام کننده یعنی اداره کارگوزیم اون کارمند هم شده هست مستخدم نه مستخدم ولی خب اینا رو حالا در حال عادی میگن. مرحوم تغییزده هیچ وقت نمیگو مستخده، نمیگو مستخده. یا مرحوم بدی و زمان همیشه میگو مستحق. هیچ وقت نمیگو مستخده. یا کرامت، نه کرامت. نصیب ماست به هشته خود آشناس برو که مستحق به کرامت گناه داره. یک کسی که لاف عشق بزنه و در این حال گله از یار بکنه لاف دروخ میزنه اصلا لاف زدن به معنی چیزای بی حقیقت رو به خود نسبت دادنه من چنین میکنم من چنان میکنم. بی خودیه لاف وقتی بگن یعنی که لاعقر ثابت نشده چون خدا حافظ میگه که چل سال بی که من لاف میزنم که از ساکنان درگه پیر و منم این لاف میزنم اینجا حافظ نمیخواد بگه من دروغ میکن ولی میگه دعوی میکنه یعنی حالت این دعوی داره میگه کسی دعوی کنه که عاشق و از یارش هم گله بکنه این دروخه دعوی و چنین اشوازی باید گرفتار خوری بشه قلوگاه روخ او دیده من تنها نیست ماه و هم این آیه میگردانم هم. این همین باید جدا از هم نوشته بشه هم که تو نسته مرمان خاندری هست میدونید که برای اینکه که شما کسی رو ببینید نقش اون شخص باید توی چشم شما بیفته و من کسانی که الان میبینم تصویرشون توی چشم من بز نگام بکنید می‌بینید که هست این تصافیح. بنابراین چشم رو تشبیر کردن به آینه یا چیزی که تصویر رو مرکس میکنه میگه جلوگاه رخ او که البته مراد حقه و معشوق عزلی و عبدیست میگه جلوگاه روخ او دیده من تنها نیست اما آیندار و آینگردان به معنی مشات است. کسی که اه, زینت میکنه، آر آرائشگرد. کرد فقط چشم من نیست که جلوگاه رو خوبست. ماه و هم همین آین روی میگردونه. یعنی ماه و هم آینداره، ما شاطه جلبه رخ او هستند به همین دلیل باید هم و این از هم جدا بشه جلبه گاه رخ او دیده من تنها نیست ماه و خورشید هم این آینه می‌گردانند است خورشید به شب پره اما نرسد که در این آینه صاحب نظران حیران است شب پره ان خوب باش پاپاش چشمش بقل از طاقت نور شدید رو نداره همین دلیل روزها میره تو گوشه های تاریک میشه اصویه جایی و شب گروپ که هوا تاریک کشند به خلاف نور زیر قرمز رو خیلی خوب میده یعنی تو تاریکی خیلی خوب میده یه سلسله یه دسته حیواناتی اصلا حیوانات. مرغان شکاری که شب میان شکار یکی جغده جغد هم بزرگ تو تاریکی اون چشمای درشت نور شدید تحملش نمیکنه. ولی شب شبی که شما در ظلمات جلو پاتون تا یه قدمی نمیبینید او کاملا موش صحرایی رو که از خود در اومده و بعد داره میره که خسارت برسونه به تهزار قدم به قدم می‌بینیش. و درست در جایی که دیگه نتونه فعال کنه یعنی لونهش نزدیت نباشه و راه گرزینش چه میاد با سرش کنیدارش و این حیوان خیلی به کشاورزان نهربانه برایشون و برای مفید. و نمیدونم به چه مناسبت معروف شده به که در ایران به این حیوان چونه حتی سعدی میگه که ماری تو که هر کراف ببینی، بزنی یا بوم که هر کجا نشینی، بکن معتقد بودن که جغل هر جا پنابراه اونجا خرافت <تصفيق> شد اعتقاد بیدت، به علت گوش نشینی و گوشه و رفتن تو بیرانه ها و جاهای تاریک این فکر کرد میگه شب پره کور که نمتونه وصف خورشیده بکنی که خورشید که بیاد، اون باید بره پنهان یه چیزی داره سعدی گر نبیند به روز شب پره چشم, چشم آفتاب را چه گنام؟ راست خواهی هزار چشم چنان کور بهتر که آفتاب سیاه نمیشه بگیم آفتاب سیاه بشه تا جناب ایشون چشم ببینه جهنم که ندید واستر خورشید به شب پره اعما نرسد هم میگونه خیلی خوبیه موقع غروب میاد بیرون و خوراکش از حشرات و سوام و هوام و حیوانات گزنده و ایناست اینا رو یه امواج سوکی میده بیرون گوش‌های بزرگی هم داره مثل بیف انواج میده بیرون این امواج وقتی میخوره به اون حیوون بر میگرده به خودش حس میکنه دقیقا تشتیز میده کجا صاف بیگه میگیرش اغلب دیدید موقع پرواز میرسه تا مثلا یک سانتیمتری سیم تلگراف پوریمون منحرف میشه برای که موج فرسوده و میدونه جلوش مانه بدون که بگیم و میاد این حیبونات کار می‌کنه، میکنه این چیزها رو و میره در ذهب میگم بگم گروه هم باقی هم میبونه بسیار مخیده است و خوراکش پشه و به خصوص پشه و این هشرات است که شب فعال هستن اون گوشت های لخم رونشو که این خیلی خوب بهره برده میکنن ازش مثل رون مرگ اینا از خوردن هم پشمه شد و اینا باید وقت چیز میتونیم یه زبانی داره شبیه زبان مار دراز میاد بیرون در آن واحد یعنی در یک صدم ثانیه میاد بیرون و پشه میگیره و میره تو. یعنی پشه قبل از اینکه به تهمه چه خبره رفت. دنبال کارش حالا گنده ترم گیرش بیاد میخوره البته اینها را این <حالا حتیم> نبشه <تصفيق> اینا رو ما چیز نکردیم در اسلام که معتقدن که گورباقه مسخه یعنی آدم بوده و گناه کرده تبدیل به گورباقه شد چند تا ایبون هستن که مسوخ بهشون میگن یکی فیله این ها هم میگن هرون یکی فیله یکی خرسه یکی میمونه یکی قورباغه، هست یکی مارماهیه شاید بعضی پیونای گم باشه که اینا معتقدن که این حیوانات آدم بودند به علت گناهانی که بعضیشون تفصیلش هم گفته شده. عرض کنم که در قرآن کریم آمده است که گروهی از یهودیان به نام اصحاب سبت سبت یعنی روز شنبه شنبه تعطیل یهودی است. اینا ماهیگیر بودند و که میرفتن برای ماهیگیری روزای هفته ماهیایش دوم به تلیونونده روز شنبه که می‌شد توی اونا هم حس کرده بودن که کسی نیست می‌امدن فرابمون فرابمون می‌امدن بعد اینا یه فکر کردن گفتن خب ما چیز نمیکنیم شنبه رو ضایره کنیم ولی جمعه شب دامو میاندازیم صبح یه شمبه می‌گیریم گلک جوبی زده بودن یه دو روزی ماهی مبسود گرفتن یهوه خدای یهود که بسیار بیرحم و سختیر هست و میگه من تا هفت پشت افراد رو به گناه پدرشون عذاب میکنم <تصفيق> یا این در کتاب مقدس در تورات هست خیلی آتش طرف میشه بی شما احترام دوست شنبه رو شکستین و بهشون میگوید که کنو قردتا خواستین تبدیل رو به میمون های زیانکار و از اون روز میمون تشکیم و وصف خرشید به, به شبفر ری اما نرسد که در این آینه صاحب نظران حیرانه اینجا در این حال که صاحب نظر به اون معنی است و خرشید هم به معنی ذات حقه و شبفر هم به معنی مردم جاهل و نادان و اوان ناسه در این حال خورشید رو با چشم معمولی هم نمیشه دید یعنی چشم بینام نمیتونه خورشید نگاه کنه و کور میشه هستن ادهی هستن مرحوم استاد امان ترمود که من از دهی اومدم مرحوم فرزانفر از ده بشرویه که مردم اینجا شهرکور هست برای اینکه ناحیه کبیری است شبا فوق الازه سرد میشه بسیار سرد میشه و اینا صبح زود میان سینکیش آفتاب میشه و چشم رو میدوزن با آفتاب بعد مدت شبکیه اینا آسیب میدین و شب که چشم رو شب میشه یکی نمیشه میگه صاحب نظران شبقره کور که هیچی کسانی هم که چشم حسابی دارن در این آینه حیرونه اگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار چشم سیاه محشو چه کار میکنه؟ هم مستوره یعنی پوشیده است هم مستور حال که مستوری و مستی زده هم. بنده الان اگه سر سوزنی از این اون ملقه خورده بودم و نشسته بودم اینجا تا دو کلمه هر معلوم بود که حالم خرابه. اینه که نمیشه میگه ولی چشم سیاه تو این کارو میکنه هم مستوره هم مسته و شاید مگرم یعنی شاید مرا چشم سیاه تو کار یاد بده و اگر اینجا یعنی هیچ کس، مستوری و مستی رو با هم نمیتونه داشته بشین در شوند گه از اندیشه ما مقبچگان بعد از این خرقه سوپی به گروه نستانند اولا اینجا ملازمی فرمید که به گروه نستانند اون چند بیت بالا در بیت پنجام بود مفرسان هوایی هوای میموترب دارد اینن تکرار شده قافیش به گرونستانند یک این احتمال این هست که حافظ یه بار یکی از این بیتها رو سروده بعد یه بار یه بیت دیگر سروده خواسته عوض کنه وی جای اون یکی تو بعضی نصخه این بیت بوده تو بعضی نسخه اون یکی بیت بوده مرحوم خانداری هردشو آورده و اله به نظر من میاد که اون بالایی مفلسانی و هوایی مطرب داریم بیت بهتری هست از این پایینی. گر شانداق گه ما موقتشان موقتشان اینکه خدمات میخانه. برای که مگان استراحت میخانه دار بودن و بچه هاشون هم اونجا خدمت میکرد. می که امت مسلمان کستش میشده شراب بیاندازه و به روشه فقط میخورده میخریده و میخورده می انداختن و تهیه کردن و سیر کردن ایناشو رو گذشته بوده برای کفار یهودی، مسیحی، زردشتی اونا این کارای پست رو انجام بدن و ایشون تشبیه اونجا فقط بخورن و اینه که میگه مقبچگان اگر از اندیشه ما آگاه بشند بعد از این خرقه سوپی رو گروه ورنگ دادن گر به نزهدگه ارباح برد بویت و باد عقل و جان گوهر هستی به نسا این صد درصد بیت ارکانی نزحت یعنی گردش و تفرج نزهدگه یعنی تفرجگاه نزهدگه ارواح یعنی جایی که ارواح میرن به تفرج و گردش میگه اگر بوی تو رو باد اونجا ببری برای پیشکش و برای نثار یعنی پاشیدن رو سره. آورنده این مجده گوهر هستی رو عقل و جان به نسار می افشاند افشاندن به معنی پخش کردن و پرتاب کردن چیزی است که دارای اجزا باشد مثل دانه افشاندن دانه افشاندن یه مشت گندم یا جو دستشه پخش به زمین برای در اینکه در این میگن افشان عقل و جان گوهره هستی به نسار افشانه حافظ زاهد رو دوست نداشته دیگه و اینکه زاهد خودبین میشده زاهد بعض یه مدتی نماز خوندن و قرآن خوندن فکر کرده پر پسر خاله شد بعد ناصر پلو که می دیده می گفته خب این مرد که قیشش که میتارش لابد وایسادن میشاشه این تو جهنمی بگمشه یک کاری به باطنشو این اینکه این چقدر آدم خوبی و چهی رو چهی روی که نداشته که این از که زاهد خودبینی میاره محافظ یه جا میدهیم که زاهد و عجب و عجب یعنی خودبینی زاهد و عجب و نماز و من و مستید و نیاز خود او را سمیان با که این من روشم اینه مستی و نیاز زاهدم روشش اونه اجب و نماز تا ببینیم که یه جدیگه میگه یه زاهد قرور داشت سلامت نبود راه رند از راه نیاز به دار سلام را یعنی که حافظ هیچ میونش با زاهد خوب نیست در ذهن بگم که شیخ چند بار گویا گفتم بازم میگم صد دفعه میگم بگم کم <تصفيق> شیخ که میگه حافظ عوضاً معنیش آخونده امروز روزیست چون امروز روز آخوندارم شیخ و در چه وقت که میخونیم که شیخ مثلاً فلان فکر بونیم که آخونداریم اصلا این فرس. شیخ مرحله دوبومه یعنی مقام دوبومه در سلسله تصف اول پیر یکی است در هر سلسله یک دونست بعد شیخه برای اینکه پیر در ده جا مثلا 20 جا خانقاه داشته نمیشه که همه اینجا باشه که مرتضی علی نیست که گفتن مرتضی علی یه شب 14 جا مهمون کردن حضرت هر 14 جا تشرف خب مرتضی علی فرادید ولی پیر نمیتونه یه جا بیشتر بنابراین از جای خودش یک کسی رو میذاره اونجا در هر خانقاهی، جدا او روش میگن شیخ و شیخی که حافظ میگه به این معنی است اون کسانی که ما امروز به نام شیخ و آخوند و اینا میشناسیم حافظ زا باعث، زاهد و امثال اینا ازشون اسم باعثان که این جلوه در مهراغ و میکنن. چون به خلبت میرسند آن کاریگر میکنم و ازادت جایی ولی شیخ معنی توتیانه داره اصلا رب دیگه شیخ امروز ندید زاهد ار حافظ نکند فهم چه شد؟ خب نمیتونه فهم بفهم در ضمن باید بگم که فهمیدن رو ما تازه ساختیم قبلا فهم کردن میگه حالی که در دوره حافظ مثلا تلبیدن بوده خیز تا از در میخانه گشادی تلبیم این تلب آخر خودش مستر عربیه بعد ایدن فارسی در میاریم میشه مستر فارسی تلبیدن تلبیدی تلبیم این بوده ولی فهمو هنوز نساخته بودن فهمیدم فهمیدی فهمید نبوده دوره حافظ فهم کردن مرحوم پورزانفرم همیشه میگفت من حرف شما رو فهم نمی‌کنم نمی‌فرمود که نمی‌فهمد زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه شد دیب و ریزد از آن قوم که قرآن خوانند زاهد میگه دیب خودش هم میگه اون قومی که قرآن نکنه. یعنی معنی اصلی قرآن رو فهم می‌کنند ببه؟ باستی نیست باله شنبه هم از همونه شبت شنبه واه البته هر پی که از داشت داشتن و حتی برای خود تصوف شما بخواین تعریف پیدا کنین مثلا 5000 تا تعریف میتونید به اعتبار مسائل مختلف یعنی خیلی چیز گلاگوشاد بنابراین مسائل مربوط به خیلقه دادن و گرفتن و این هم اینا خیلی آداب و ترتیبه های مختلف داشته که باید برای دیدن جزئیات شروع کنیم به کتابایی که در باری تصف نوشتید خب سد و هشتا دو هشت پر حافظ معلوم بایده این مستقل و مستقل اینا یک طرح اسم فایل و اسم مقعول بله اسم فایل مستقل بم اسم فایله یعنی استخدام کننده مستخدم اسم مقعوله یعنی استخدام شده من روخ این غزل 189 رو روون کردی یه خود غزل دست اندازداری نه این غزلی که بباشد حالا میرس. که جفا دلها چو بر بندند بر بندند بر بندند نه به فتا که جفا دلها چو بر بندند بندن. دلت انبرین جانها چو برشاین برشانند به چشمم لعل رمانی چو میخندند میبارند به رویم راز پنهانی چو میدینند چو بنشینن نه نحال شب در خاطر چو برخیزن بنشانن گوش دریا دریاوند نگردان دگردان دگردان تیم منصور از مرادان کی بردارم بردارم بدین درگاه حافظ را چون می‌خوانم می‌خوانم چون مساغان نیازارند نازا رند که با این درد در اگر در بند در بند که با این درد اگر در بند درمانم دارم. باید من من دوباره این می میخونم به دلیل اینکه تمام تکبیه ها باید و کلمه آخر بشون سمن قبار رویان قبار چو بنشینند بنشام پری قرار دل چو بستیزند بستام به فطره که جفا دلها چو بربندند بر چه سه انبرین جانها چو بچایند بپشاند سه چشمم لعل رمانی چو میخندند میبارند سه روی امراز پنهانی چو میبینند میخانند به عمری یک نفس با ما چو برخیزند برخیزند نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانه سرش که را چو دریابند دریابند رخ مهر از سهرخیزان نگردانند اگر چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند بدین درگاه حافظ را چون میخوانند میرانند در این حضرت چون مشتاقان نیازارند، نازارند که با این درد اگر در بند درمانند، درمان اولاً این یک قضل آکروباتیکیه بچه حافظ با این الفاظ، این نداری بندبازی کرد در های و هیچ غزل دیگه حافظ به این صورت نیست که با این الفاظ اینجوری تردیب داده باشه و به کرده باشه و مشابه و بیشتر توجهش به این الفاظ و روابط اینا با هم باشه خیلی هم زیباست ولی یه ذره غزلش خوندنش و درکش یک کنگ سخت به علاوه غزل ارکانیه در حیرت همهش من اول، اون بیت آخر رو یک کلمه میگم و بعد، برای اینکه بیم سر غزل رو به تفسیر صحبت بکنیم، یه چند دقیقه چیز میکنم این بیت آخر که می‌گه در این حضرت، چون مشتاقان نیازارند، نازارند که با این درد اگر در بند درمانند، درمانند دو تا بیت دیگه می‌خونم تفسیر اینه یکی بیتی که مرحوم استادم همیشه میخوند هر که در این فص مقربتر است جام ولا بیشترش میگه <تصفيق> یکی هم یه شعر خود حافظه میگه منو مقام رضا بعد از اینو شد چه رغبی که دل به درد تو خو کرد و ترک در مندور. میگه اگه نیاز بیارم این درگاه ناز در مقابلش میدارد. و با این درد، اگه فکر درمان باشن، حسابشون پاکه برای این درد خودش مهمتر از درمانش. این این از دیگه حالا یک کمی استراحت بکنی، تا بعد بنده بفرزن به واقعی کارا چه، نمیدونم چیز کنیم، گفتم، ولی نسخهش ندارم. ندارن هر حال انقدر ایشون په کار گرفتن و دنبال کردن تا بلاخره ما تلفن کردیم به دخترمون دختر اونام گفت که من ندارم نسخه گفتم ببین چه پیدا کنیم اینا یکی از شاگردان پسر نجف در دریا گفت چی می‌فاین؟ گفتم اون پنه نگاره گفت من دارم نسخه رو داد به ما و بعد من رفتم تهران یه نسخه از چاپ دوم که فرم فرم 16, صفحه 16 صفحه چاپ می‌شد داده بودن به من که ببینم که غلط د معمولی در چیزها اونم داشتم که چاپش خوب بود اون رو گرفتم و باید نشستم و تقریبا نزدیک دو ماه اون های این کتاب همه گرفتم به طوری که دیگه هیچ قلط نداشته بشه از اون جاهایی که غلط نداشته یک کلمهی که یه جا غلط بوده از اون جایی دیگه بریدم چسبمدم رو این برای اینکه که ها چیز هلون امیدوارم دیگه کتاب بی غلط مقدمش رو تغییر دادیم یه مقدمه برای اینجا نوشتیم و اینجا چاپ شد و دو قسمت یه قسمتش همین مربوط به مسائل مربوط به چیز نوشتنه که چجوری باید چیز کرد که تا صفحه 93 میاد بعدش هم داستان ها و موضوع دیگه و آخرش هم یه مقداری راجبه اینکه که رومانتیست چیه کلاسیسیست چیه همانتیست چیه. از این حرف ها یه چیز رو بلاخره کردیم دوره ای که من دانشجوی دشته عدد باستیم باشی من آقای دکترون خیلی خب باید انتماع کنم نه خدا خیرت بده و هر حال بله این کتاب چاپ شد و کسی اگه بخواد چیز نوشتن فارسی یاد میگیره واقعا راهنمای نمای بدی نیست حالا من دیگه نه از کار خودم تعریق کنم اما راهنمای بعد نسبتا دقیق گفته چیکار بکنن هر کسی در هر مرحله‌ای هست چیکار بکن تا کارش درست خب سمن بویان خب چو بنشینن بنشان طبیه ایست که سمن سمن یعنی یا سمن و سمن یعنی معشوق معشوقان میگه معشوق وقت که بیشینه گوبار غم رو برای که معشوق تا وقتی بایستاده است هنوز به دام نایمده و امیدی به وصلش نیست هم وقتی نشست به قول خود حاجه شیراز میگه بند غباتو وا کن بگو شا بند غبات ای مهر خورشی کرا تا چه ظلفت سر صوده آزده در پا فکرم بند غبار رو باز کن بعد عرض کنم که میگه اینا وقتی بنشینند قبار مینشونن، رو از بین میبرن. برند پری رویان قرار دل چو بسکیزند بستانند برعکس وای از اون روزگاری که اخم خانم بره تو هم قرار دل تو بستیزند بستانند سر جنگ باشه قرار دل آدم رو می دیرن. به فترا که جفا دلها چو بر بندند بر یک چیزی بود از قلاق مانند کنار زین پشت سوار که بعد با کمند با تنابی که سوار داشته اگه سیدی می کرده یا تو جنگ بوده اگه سر دشمنی ای چیزی این بریده یا اگه توبرهی داشته یه باری که می خواسته بره، این رو به اون فتراک می دسته. اگر که دلها رو به فطرها که جفا ببندند دیگه بستند دیگه وای به روزگارتون به فطرها که جفا دلها چوب بربندند بندند بر بندند بر بندن. بر بندن برای تحکیده وحشی واقعی که ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم امید ز هرکس که بریدیم بریدیم دل نیست کبوتر که چو برخواست نشیند از گوشه بامی که پریدیم پریدیم رم دادن سیده خود از آغاز غلط بود اکنون که رماندی و رمیدیم. رمیدیم این دوباره میبره تحکیده به فطره که جفا دل ها چو بر بندند بندن. ز زلف انبرین جان ها چو بچاین بفشانند میگه اگر جانها رو از خم زلفشون بیرون بیارن میریزن دو جان تا وقتی قدر قیمت داره که در حلقه زلف او باشه وقتی از اونجا آمد بیرون دیگه نی افشانش افشاندن رو قبلا گفته ز چشمم لعل رومانی چو میخندن میبارن لعل <تصفيق> لعل نوعی از یاغوت یه قدری کمرهنگتر و یه قدری ارزان باهاتر و هم هم یاغوت اکسید آلومینیوم هست آل دو 5 یکی از اینا زیوارش در رفت بگیم این مال چونه هست نه نه مال چونه هست مال چونه هم یاغوت هم اکسید آلومینیوم آل دو او پنج. و خیلی تعجب نکن تمام خاک رسی که در دنیا وجود داره و یه بار قلاقش سنار میارزه اونم پرمولش همین آهل دو و پنج منطقه ها لعل و تحت فشار زیاد و حرارت زیاد متبلور شدن پریستالایز شدن در حالی که خاک رس امرفه یعنی مت... به صورت بلور نیست این تفاوتش به همین دلیل معادن لعل و در میون خاک روس در خاک روس یه وقت یه برقی میزنه یه صاعقه ای میزنه یه حرارت شدیدی وقت میرسه یه رگه تیکه‌ای از این تفقیق میکنه به یاقوت یعنی متولد و بزرگترین معدنش هم در جزیره سیلان سرندی الان سریلانکا سلیلان... بهش میگن اونجا خیلی هست رمان یعنی انار تو قرآن هم آمده و فاکهتون و نخلون و رمان رمان یعنی انار لعل رمانی یه نوع پرقیمت بوده که مثل انار، مثل دونه انار، قرمزی شبیه دونه انار بوده. میگه وقتی معشوقان میخندن از چشم من لعل رومانی میبارن مراد عشقه البته عشق وقت سرخ نمیشه اینو قبلا توضیحه ولی چون چشمه کسی که گریه میکنه به علت حجوم خون سفیدی چشمش سرخ میشه این رو در مقام مبالغه گفتن عشق خونی. حافظ میگه عشق خونین به طبیبان بنمودن گفتند درد عشق و تو جگرسوز دبایی داره یا اینجا لعل رومانی از چشم من می وقتی میخندن خندن رومانی از چشم من می بارن راز پنهانی چون می بینن می خانن استاد خیلی این شعر میخوندن. از پریدن از رنگ و از تپیدنهای دل عاشق ویچاره هر جا هست و اصفا این همینه میگه تا منه میبینن معشوق هم خبره است در این کار دیگه وارده که چیکار داره میکنه و عمل چند چه نتیجهی داره یه قدری داشته باشه زرویم راز پنهانی چو میبینن میخوانن عمری یک نفس با ماچو بنشینن فرقیست میگه کار باید برم نمیشون آه که یکنوز ننشستی جا گرم نکردی به عمری یک نفس البته در ذهن بگم که لحظات به سال خیلی زود گذره یعنی طرف یه شبانگزان که بیشینه به چشم عاشق یه نیم ساعت بیشتر نمید به عمری یک نفس با ما تو بنشینن برخیزن نهار شو در خاطر چو برخیزن، بنشانند وقتی بلند میشن تازه درخت شوق و در خاطر آدم میشن سرش که گوشه دیران را چو دریاوند در یاوند در عشق گوشه دیرانم که اگه برسند بهش محصول که اگه مراعات یه گوشگی رو که داره عشق میگیزه بکنن یاد به مراعات او رفتار بکنن عشق او تبدیل میشه به مربارید. چه مرباریدی؟ دی؟ این که خداون مراد اون محچوبی رو که نسبت به عاشق مهربانی کرده میده این دور با الا عشق دور نمیشه که سرش که گوشگیران راه چو در یابند، در یابند مهر از سهرخیزان نگردانند اگر دانند اگه بدونند روی مهرشون از سهرخیزان بر نمیگردند چون منصور این منصور اسمش منصور نیست من در اینجا مقدس مقدسی خدا وزیفی هم دارم،, دارم. والا آقای با با اسم کنید؟, کنید اسم این عارف معروف رو دارسدان حسین حسین بن منصور, منصور اسم بابا. والد بسیار معروف شدن کسانی به اسم پدر سن ابن سینا پدر سینا بوده خودش حسن یا حسینه. حسین حسین بن علی ابن سینا ولی چیز مولانا که بو سینا از به جای ابن سینا ترازی ست دفعه از شوی نمیسن، نووت دفعه شوی نمیسن زکریای رازی زکریای رازی اسم پدرشه و آدم بسیار مزخرفی هم بوده برای این آقای محمد بن زکریای رازی تا چل سالگی بی سواد با این یکی از اجایب روزه داره بعد میفته تو کار کیمیاگری میره دنبال اینایی که تحقیقات مربوطه کیمیا میکنن شیطون تری بهشون شون میده که مثل رو تبدیل کنن به طلا و میرن مواد سمی و اینا میگیرن و گو و نمیدونم سوبه و بسات و اینا و دم میدونن و دود میکنن و بودای سمی و اینا سوینه شون خراب میکنه. این بابای بی هم محتاجه تو کار کیمیاگری به خب نتیجه هم نداره نزجه این بود که چشمش خراب شد چشمش خراب شد و ناچار شد بره مراجعه بکنه به حال یعنی چشم به که حال منزه یک قاش و چای خورید گردی آشغالی کرد تو کاغذ داد به از گفت ده دینار میسید ده دینار تلا یعنی پنجا گرم تلا بازی کسی خودش گفت این چه کیمیا گریه یکی من عبله رفتم کنم ولیش کیمیا اینه آمده یه قاشق فلف زرشوار من داره میفشد ده اینو آمد چونو کرد به خوندن در اون سن برسید به جای که شون سابقه کیمیا گریم داشت الکول و کشف کرد و بزرگ این کتاب طبی که در اسلام نوشته شده کتاب الهاوی مال محمد بن زکریای رازی است که هنوز معلوم نیست چند جز داره گفتن هفتاد جلد بوده بس اجزای زیادش نمیدونم من الان که چاپ شده یا نه تمامش به طور و اگر برای جامعیت یعنی تمام علوم بگیریم ابن سینا پیلسطه اوله که همه چیز می رو میدونست ولی اگه طب و تنها رو بگیریم ابن سینا انگوش گوچکه رازی هم نگیش و رازی تقریباً صد سال یه خود بیشتر از ابن سینا قدیمی تاری. خیلی قدیمی در حال حسینه به منصور حلاج ارز کنم که ستوپی بوده که وجودش خیلی خیلی مؤثر بوده و مثل همه آدمای بزرگ و آدمای موثر مؤثر دوستان خیلی قوی و دشمنان خیلی قوی بشه این آقای خمینی رو که گروهی اسمشو حاضر نیستن ببرن و فکر میکنن که این خیلی آدم بعدی اصلا ابلیسه یه دسته دوستانم داره که تا همین حد حاضران سر خودشون در راهش بدن همین حالا بعد از سالها که موجود این نشون میده که این آدم بزرگی حالا آدم بعدی یا خوبی کار ندارم وجودش منشاء است خلاجم چه آدم یعنی دوستان داشته که جان در راهش میدادن و دشمنان داشته که آخرش گلکش کنید داستان ها داره حتی در نظام صوفیان بزرگم یه ادهی طرفتارش بودن یه ادهی مخالفش بودن بنده یه کتابی الان دارم در زیر چاپ امیدوارم انشاءالله که همین امسال منتشر بشه به نام کارگاه خیال احوال ادهی از شاعران و نویسندگان کلاسیک سعدی، مولانا، حقی سیاست دامه فاجنزاموت، ابن خلدون اینا رو گفتارهایی در اون کتاب دارم، یکیش هم راجع به حلاج و پس اینو بعد معروم شده منصور حلاج، در حالی که حسین ابن منصور و هر حال حافظم میگه منصور چون منصور از مراد آنان که بر دارن بر به من اون کسانی که میوه درخت مراد رو چیدن میوه مراد رو دارن کجا هستن؟ سر دار. اما دار دوبام دار دوبام بانی درخت هم داری که آدم آوزون میکنن دار بانی درخت هنوزم تو تیرون میگن دار درخت در مازن درون میگن دار اصلا درخت نمیگن میگن دار و وقتی بارون میاد و بارون تموم میشه و یه مقداری رو برگای درخت میمونه و آدم که میره یه وقت تنش میخوره هر این بارون ها رو سرش اون بارون ها رو بشه میگن دارباران دارباران یعنی بارونی که سر درخت مونده هر قدیم اشخاصی رو که دار می زدن آبیزونشون نمی که آبیزون کردن در ذر دقیقه کار پندقه کمتر کار رو تمام می کنه اینا یا یه درخت ساده رو یا دو تا درخت شکل سلیب رو سلیب عیسی داره بیدیم ایسا رو هم بعد محکوم رو می به اون درخت اگه درخت بوده دستش از پشت می بردن می بستن پاهاش می بستن. بزرگترین شکنجه براش این بود بودی که همونجا بهش کنم داری برای اینکه این بعد از چند دقیقه تمام این شریاناش اینا بسته میشه. و خون نمی برسه. و در میشه سیاه می شه با و این روزهای متوالی باید فریاد بزنه تا بعد بینیده این بدترین نقه چکنده از این ملائمتر این بوده که با سنگ بزنه یه صحنه از این سنگ وارون کردن و در وجلس دارزادن که وزیر در تاریخ بیحقیم مفصل نقل کرده و اون بردار کردن حسنک وزیر به صورت یک جزده‌ای سری جزده از 56 تا جزوه که برای تدریس در دانشگاه تهران تهیه شده بود و استادا همه استاده بزرگ دانشگاه همه شرکت داشتن هر کدوم درست کردن این مجلس بردار کردن حسنک وزیرم از خیلی قدیم به صورت اون جزوه در اومده الان با یکی دو دلار شما میتونید به نشریه کتاب بگیرید این قصه بردار کردن حسنه رو براتون یعنی لازم نیست خود تاریخ بیغیری تغییر کنید بخونیده. بعد بعدم قصه حسنک رو توضیح و تفصیلم هم دادن همه چیزای رو اونجا نوشتن و جزئیات دیگه چون سرش میخواستن ببرن بفیسن برای خلیفه یک کلاه گذاشتن کلاه آهنی گذاشتن اون سرش که صورتش در اثر انداختن سنگ صدوه نده و بعد شروع کردن به سنگ زدنش بسته بودن به دار مشکلی رند راستیم دادند دادن که مردم که نمی سنگ بزنن به اون قیلی احترام بود یه دادن اوباش بی سر و پا رو فول دادن که بیان سنگ بیاندازن ولی مرد بگه همون اول مرده بود برای اینکه ذهن انداخته بودن به دروش تینه بوندن به دار همون ذهن خفه کردن خوش پختانه و این نرا و از همه آسانترش این بوده که تیر بارون کنن و در نحچه بارون در ظرف لاخل یکی دو ساعت بابا گمید این طریق دار زدم و به همین دلیلم گاهی شده است که کمک برسه و اینا رو از دار بیارم پایین تو داستانهای عوامانه خیلی این صحبت هست که بعضی از پهلوانان طرف رو میگیرن میارن دار میزنن و بعد میخوان یه بارون کنن دوستانشون میریزن و حمله میکنن و دارو رو محاصره میکنن و اینها رو این یعنی اون تنابو رو میورن و از دار میارن چون این حل غابیز کردن ست سال هم ساید از عمرش نمیذاره خیلی کار تازه است بنابراین اگه کتابای قدیم کنید دار زدن دار و دعار رو اینا فکر نکنید که همین دعاریست که ما داره. منصور هم, هم این کار کردن اولا دستاشو پاهاش اینها رو بریدن بعدم هم دارش یه چند روزی هم رو دار گذاشتنش بعد از آشوب مردم ترسیدن جسد آوردن پایین سوزوندن و رو ریختن تو پرتونه تو دجلی میگه چون منصور از مرادانان که بردارن بردارن, بردارن. برای که منصور گفتد انالحق انالحق که گفتد من خدا هستم معنیش این بود که منصوری در میون نیست من در وجود حق حل شدم فنا شدم و دوستان کسانی که میخواستم میدونستن اینو کسانی که میخواستم پرونده به گفتن آقا دعوی خدایی کرد بر میگی کسانی که از میوه مرادو چیدن جاشون بالای داری بدین درگاه حافظ را میگه حافظ هنوز اون سعادت رو بیده نکرده بدین درگاه حافظ را تو میخوانند میرانن وقتی حافظ در این درگاه میخوانند باز پسش میترسند میگن تو شایستگی این کار هنوز نداری هم دو نظرم میاد که میورو که بعد میرن سر دار نه اینکه چون سر دار هستن نیوه دارم ما میترونی کنم یعنی, بردارم، یعنی بردارم، چی؟ یعنی که بردارم بردارم بله، حالا به هر حال ب... به نظر من میاد که بهترین این که آخرین یعنی هست هستن این قسمت رو بذاریم آخر جمله بگیم کسانی که از مراد نیوه به دستا بردن کسان هستن که سرستون باختن هم... بهتر اینجور بخون حالا اگر خود می شونم بشه کنیم نه در این حضرت حضرت به معنی مجلس در این حضرت چون مشتاقان نیاز آرند ناز یعنی آرن. در این مجلس اگر کسی بیاد نیاز بیاره در جواب ناز تحریبی گفتم هر که در این بعض مغربتر است جامعه بلا بیشترش میدهن چرا؟ چرا این کار می‌کنه؟ میگن تو خیلی ابله‌ای که با این درد خوش نیستی درد عشق از تندرستی خوشتر است گرچه غیر از در ما نیست. ولی؟ <تصفيق> بله؟ دلیداری به دلبندی بده دل. زایه آن کشبر که سلطانیش نیست ماجرای عقل بردن پیش عشق گفت معذول است فرمانیش نیست آرفان در بیش صاحب درد را پادشاه اگر نانیش نیست خانه زندان است و تنهایی ملال هر که چون سعدی گلستانش میگه کسانی که با این درد با درد عشق دنبال تندورسنی میان اینا به درد عشق نمی‌خورن برای همین دلیل باید ناسازی که با این درد اگر در بند درمانه درمانه در نی در در در خب آ، اینجا اولاً که مال نسخه خانداری یکیش می‌خوانند، پیشتر میرانند عقب‌تره از رومی قافیه‌ش می‌خواننده، درسته؟ بیت شیشون قافیه‌ش میرانند، درسته؟ آه، جاشون تحقیل ولی اون خوندن بالایی رو عنی کردنه میگه راز میخونه این خوندن پایینی رو دعوت کردن یعنی معنیش فرده اما هر حال هر که قافیه نشد میگه میگه آخه قبلش هست و این مضمون تکرار شده گفتم میگه سعدی بگه درد عشق از درستی خوشت کرده میگه کسی که درد عشق داره و دنبال دا درمانشه یعنی آدم بی خودی اصلا این قابلیت عشق نداره اینه که وقتی بیاد پلو معشوق جز ناز تحویل بمیکنه برای این درد کسی که در بند درمان باشه درمانده بیشه مضمون است خیلی یعنی تازه نیست که آدم بگی که خب ارز کنم که ازال بعدی یکی از شاه غزل‌های خواهجه است. بخن بخن. بخن هست سوام از این ناسکه‌ی من هست خلاه‌ها منرگس که معلوم نیست چی باشیم خودتون بخونیم حسن خلاه‌ها منرگس مستف یه باقید با همین, با همین تعنی بکنید، ندید به ماست برو نه برام تندلیل تو از خرق را خزاران تو دست و هم به بیا به میلکده و شهره کن من رو بسوه، هنگاه سیاه خواران خلاه و سحافه که بست دار, بست دار دستگاه نرگس مسته تو تاجداران خراب باقی لحلت تو را ثباب و مرا آب دیده شد قماز وگر نه آشق و معشوق رازداران دارن. ز زیر زول فدوتا چون گذر کنی بینگر که از یمین و یساره چه قراران گذار کن چه ثراب بر بنا فشزا ببین که از پتاهول زول چه سویتوارانه. نصیب ماست به هشت خدا شناس برو. که مستحق کرامت گناهدارانم نه من بران گل آرز قزل سرایم و بست که اندلی به تو از هر طرف ازارانم تو دستیر شو ای خزر پی که من کیاده می رفم همراهان سوارانه هم. بیا به میکده و چهره ارغوانی کن مرا رو به سومه کنجا سیاهگارانم خلاس حافظ از آن زلپ تافدار مباد که بستگان کمنده تو رستگارانم باز این همون بیت آخر قزل قبلیست که میگه هرگز مباد که من از اون زلپ تافدار خلاس کشم یعنی اسیر کم عشق بمونم این غزل شاه غزل یکی از شاه غزله های حافظه که تمام بیت هاش بدون استثناء شاه بیت و یک دونه بیت یه ذره پایین تر نداره اصلا اون نسخه است، اون نسخه دو بنکرد حاله، زلطه دوتا چون گزار کن؟ بله، ببین درست، درسته، بله غلام و نرگس مستطب، تاجداران بسیاری از تاجوران و پادشهان دیدن که اصلی به عشق برده خودچون، غلام زرخری خودچون شدن و غلام اون شدن نمونه کاملش محمود غزلوی اولین بابچه هایی که نام سلطان رو خودش بگوشد و قدرتش قدرت این بود یه پسره که بچه توپونی بوده افش ده سال این بچه رو میبینه از قیافه این بچه خوشش میاد و سوالی میتونه این بچه جواب مناسب میده و بچه خیلی تیز میبینه اینه که خیلی بچه بابیشه که پدر مادرش میگه که اینو بگیم به من من سعی میکنم که اینو تربیتش کنم و اینو میکونه دهش بگرام قبول می این قصه در نوروزنامه خیام هست می‌بریم. قصه دیارم. میبرش این همون عیاز محروضی هم آقای براهمیم در یه مقاله ای در مجلی فیردوسی مرگون فرمود بودن سرنوش دوزخی آقای عیاض و شرح مفصلی داده بودند در واقع این که محمود غزنوی واضح که جوزی یاد بیداره با عیاز کارای برد برد این عبلهیست به این دلیل که محمود غزنوی امکان اینو داشت که دو هزار تا غلام مزکر و دو هزار تا کنیز، زن، بگیره که همه خوشگلتر از عیاز داشت. وقت در مرض موت، وگر داشته میمیره، میگه عیاز رو گیم بیاد بالا سر من. رابط میخواسته از اون کارها بکنه. کسی که نمیفهمه اینو کاری نمیشه کرد. آها تمام اون زنها، اون کنیزا و تمام اون غلامها، همه اون چیز رو که عیاز داشته، داشتن. چرا یکیشون عیاز نشده؟ پس یه چیزی داشته عیاز که اونای دیگه نداشتن و مسئله اون بوده مسئله این که من نمیدونم حالا کاریم کرده یا نکرده من که وکیرشون نبودم سر طرف هم که نداشتن اما این همه آدم اونجا بوده این یه عمر دست از و ورمدره و آدم درست و حسابی زاهد عابدی مثل شیخ عطار حکایت های متعدد در کتابش درباره محمود عیاز بینیست این نمیشه که این به اون که اون پارک که انقدر پول تحصیل و انقدر چیز نداره که و اون وقت موارد متعدد از موقع شناسی و سنجی و حاضر جوابی و اون چیزی که حقیقتاً محمود رو شیفته اون کرده اونجا و در زن این من یه جای خوندن که نمیتونم بگم که میگه که تو محمود بودم میگه میگه تو غلام من بودی ولی من اکشون غلام تو هم میگه احیانا نشاره خاجب به محمودم باشه غلام نرگس مست تو تاجداران خراب باقه لعله تو حوشیاران هست اینجا حوشیاران یعنی آدم صاحب معرفت آدمای بافهم با فهم همه اسیر تو شدن البته در این حال به خودش اینجا اشاره میکنه یعنی شعر حافظ هزار پهلو داره فکر نکنیم که اگر گفتم که این اشارش یعنی یک گوشه چشمی محمود داشته بعد میگه تو را سبا و مرا آب دیده شد خماز. ماجرایی که بین خودش و یه آدم دیگه بوده میگه. هیچ اشکالی نداره. مثلا شعر حافظ قناش و ارزش فوقالداش به همین مناسبت میگه سخنچین. حالا میگن افشاگر در تنگیه است. افشاگر تو باد سوا بود. افشاگر منم عشدی چشمم بود. با عاد بوی خوش تو رو به بر این برد به آب دیده منم راز دل من آشکار آشبار کرد وگر نه آشغ و محشوق رازدارانه عاشق و محشوق هیچ وقت راز خودشون رو برمله نمیتونه اگر اتفاقی رو داد به حدیث عشق ما بیرون درس کرد به دلیل تو یا من نبوده یکیش باید سبا بوده، یکیم آب دیده قهمواز هم یعنی سخنچین زیر ظلف دوتا آتون گذر کنی بنگر که از یمین و یسارت چه بیقرارانه فکر کنید که معشوق ظلفش رو دوتا کرده بیسته بلند و بافته یا نبافته را که نیره اینا تکون فرد در این حال این آدم زیر اون زلطه بی کن بالاترین قسمت سرشی کن تو از زیر زلطی گرد میگه وقتی از زیر زلط دوتا داریم میگذریم نگاه کن ببین از یمین و تو یمین یعنی دست راست یسار یعنی دست چپ. دو طرف که از یمین و یسارت چه بیقراران هم؟ حالا اینجا چه بیقراران هم ممکنه اشاره به اون دو لخت بشه که تکون میخورن هم یعنی در یمینی اثار تو نگاه کن دیدون چقدر آدم به عشق تو بیقراران فنشستن زار کن چون سبا بر بنفش زار رو ببین که از تطاول زلفت، چه سوزد باران هم؟ مثلا این ای که اینا میگن بنافشه فرنگی نیست، بنافشه تبریه بنفشه سیدر مازنده زیاده ساخه دراز نازفی داره که شبیهش می‌تونه به زلف باید گلش کبوده و مثل اینکه سرش پایینه رنگ کبود، رنگ ماتم زدگیست، نشان سوزده یعنی مثل باد سبا تو در بنافشزار میگاه کن ببین که از تطاول یعنی دست درازی دراز دستی که از تطاول چه چجور اینا سودوار شدن؟ یعنی وقتی زلفتو به میون اومد کسی بنافشه رو اصلا محل نگذاشت کسی اصلا بازار او به کلی راکتی این است که سودوار میشستن حصیب ماست بهشت در یه بیت دیگری خاجه میگه که قدم طریق مدار از جنازه ی حافظ برای اینکه گاهی بعضی از این پشت مقدسه ها که دیگه کردم میگو این مکه که رشش تو تاوشیده و امیتن که روزه میخورده و که عرق و نمیمدن سر نماز نیته گفتم این آدم ساله نیست با نماز چون بخوره ما برش نماز نمیدیم حافظ یک قدم طریق ما از جنازه ی حافظ که گرچه قرق گناه هست میرود به بهش تا چشم تو بگشه نصیب ماست بهش ای خود برو که مستحق کرامت گناهکارانه گناهکاری که میتونه کرامت و کرم خداوندی رو آشکار کنیم اونه که مستحق کرم خداست بنابراین ما گناه کردیم که کرم خدا رو آشکار کنیم و بهش نصیب ماست امن یعنی بران گل آرز غزل یا بست آرز یعنی رخسار. گل آرز یعنی رخصاره‌ای که مثل گل یه یکی من تنها به گل رخصار تو قذل سرا نیستم باید من تنها نیستم وقتی تو این مصرهای دوم بیرین قشنگه که اندلی به تو از هر طرف هزاران هست بول بول تو هزار تاست در این حال هزارم خودشانی بلگل هست که اندلی به تو از هر طرف هزاران هست تو دست دیر شعه خضر پیر کجست گفتن که دوتا پیغمبرن به عمر جاوید دارن یکی خضر یکی الیاس و الیاس در دریاها تو فریاد درماندگان می می و میچارگان میرسه و خضر در خوشن و گفتن که اسمیش رو گفتن خز برای اینکه هر جا میده زیر پاش سبت, سبت و کنیش هم عبول عباسی و قصه بس های بسیار هست از آبدان و زاهدان که اینا خیزر رو ملاقات کردن حتی بین آهمه ناس هم که از درکسی چهل روز به نیدیت دیدار حضرت خز. در خونه شد اینش از دمیدن سوق یعنی آسمان تاریخ سهرم نشده آو جارو کنه حضرت خزرونی گفتم یک بی ناز کرد و بعد بعد توی کرد و آف جا شد آمان مشغول بود نیگاه کردی که سه دو سه عقال داره از اون طرف میاد حالا ساعت مثلا سه و شب آمد گفت سلام علیکم منش در ایش کار گفت دارم اینجا رو آب و جارو میکنم گفت این وقت شب چه وقت آب و جارو گفت دیگه چیز کن دیگه بلکن دیگه حالا برحالا آب و جارو کن بخواب بودم گفت نه تو یه محصولی بگی بلاخره گفتش که آره من مح من آفجارو کردم که ازت خیز رو کنم گفت من خیزم هرچی میخوایی بخوایی آه تو سیدوسین بحقالی گفت من خیزرم دونه تو خیزرم. هر هرچی میخوایی بخواهی الان از من گفت رویل کن تو سیدوسین بکن بحقالی تمساید چهار راست گفت من خیزر گفت تو خیزری گفت بله تو خیزری این بیره بکن پارو یف میگه که دیت سر نیست. بیلی هم دستور تاب میشه پارو. حالا بیل چهار تا هم بود مسعود پارو، پاروپ سیزد. گفتند که چه زحمت زمانتیش بیل خوشتر پارو. بله. به هر حال خز و فریاد در و گمشدگان شدگان می اینی که میگه ای خضر را پی یعنی پی قدمت مبارکی. پی یعنی مبارک قدم. خود از گیر شد ای خضر خیلی خوش است که من پیاده می رفم. همراهان سواران آب میکده و چهره ارغوانی کن در اینکه در میکده مسدیست و راستی مراه و به صغم اینه کنجا سیاهگارانم خلاص حافظ از آن زلط تاق دار مراه هیچ وقت این اتفاق نیفته که حافظ از اون زلط تابدار خلاص میشه چرا؟ که بستگان کمنده تو رستگاران هم یه نکته هم هست باید بگم که قاعدتا در فارسی صفت و مصوف با هم مطابقه نمی میگیم مرد خوب مردان خوب نمیگیم مردان خوبان زن بعد ببخشیم زنان بعد. یه نمیگیم زنان بدان ولی گاهی اتفاق میفته که صفت و مصوف و با هم مطابقه میدن خلاس حافظ از آن زلفتابدار من باید که بستگان کمند تو باید بگه رستگارن. ولی میگه رستگار و نظایر این تو اینجا هست بیت دوم باز تو را سبا و من را آب دیده ست خماز وگرنه عاشق و معشوق گازدارن باید بیدید صفت متابقه نمید ولی این قاعده هست به ندرت گاهی اتفاق میفته که این کار میکنن یعنی صفت رو با معصول متابقه میدن و این قذل حافظ یکی از این مداره که تو رست دارمید دارم. دارم. نمیدونم به فرهنگ نگاه کنم به من نگاه بله بهتواستن <متصفيق> نه خیلی نه خیلی نه خیلی خلاص یعنی رحایی میگه من که حافظ از اون ظلپ تابدار رخو خلاص حافظ یعنی رهایی حافظ از اون ظلپ تابدار هرگز نباشه